سجده بر خاک تور بذکردم، این گونه شجنه مذکردم. سجده بر خاک تور بذکردم، این گونه شجنه مذکردم. هر موقع قصه ای اذکردم، انگاری که زیارت کردم، انگاری که زیارت کردم. سجده بر خاک تور بذکردم، زبر خاک تربت کردم این گونه شکر نعمت کردم هر موقع خسته هیئت کردم امگاری که زیارت کردم امگاری که زیارت کردم سار الله ابو عبده الا نافسادی که ذکرش ام بگو سار الله نفس دادی که ظاهر شد سارالله آباء الله همین روز مسافر شد سارالله آباء ابد الله دل میخواد که ظاهر شد سارالله آباء نفس, دادی. نفس دادی جزاک همین روزه است مسافر شدم مسافر سار الله دلم میخواد که زائر که زا ارشام آهم رو نفاس ول مهموم کن آهم آه رو نفاس ول مهموم کن طوفان دلما آلم کن آهم آه رو نفاس ول مهموم کن طوفان معلوم کن من می خوام کربلایی باشم تاریخش رو خودت معلوم کن آه هم رو نفسال محکم کن طوفان دلمو آروم کن من می خوام کربلایی باشم تاریخش رو خودت معلوم کن سهرالله ابو عبد الله نفس دادی ساکرشم بگو <mel Ghysim> همین روز است مسافرشم مسافرشم سار الله عبا عبا دلم میخواد که ارشام سجده بر خاک طربت کردم این گونه شکر نمت کردم هر موقع قصد حیعت کردم انگاری که زیارت کردم انگاری که زیارت کردم سال الله عبا دل تو ای شوری سار الله عبا عبدالله تو ایشوری کشیرینی آقا سار الله عبا عبدالله تو دستامون رو میبینی سار الله عبا عبدالله تو سلطانِ سلطانه، سلطانی کاش من هم قزلگاهی باشم، کاش من هم قزلگاهی باشم کاش با بوسه تو راهی باشم، کاش من هم قزلگاهی باشم کاش با بوسه تو راهی باشم، توبم رو تو قبول کن آقا تا حر ابن ریاحی باشم صلى الله ابو عبد الله نفس دادي چه بگو همین روزاست مسافر شد صلى الله ابو دلم میخواد که زا ارشم کاش من هم قبلا غایباشم کاش با او سترایباشم تو برم رو تو قبول کن آقا تا فریبنده غایباشم سین سین سین سین هی عتب بیت الزهراء سلام الله عليها b t, -z -s -t -i -r.